داستان جک و دختر طبیب فرانزیسکا زن مهربانی بود که به همراه پسرش به نام جک در کلبهی بالای یک تپهی سرسبز زندگی میکرد کلبهی اونها نزدیک یک جنگل بزرگ بود و در سمت دیگر جنگل شهر کوچکی قرار داشت جک اگرچه خیلی خوشتیب نبود اما خیلی مهربان و خوش اخلاق بود اون خیلی هم کاری بود و در کارها به مادرش کمک میکرد. البته جک به بازی کردن با حیوانات هم خیلی علاقه داشت. در برکی تمیز و پر آب پایین تپه قوی سیاه بزرگی زندگی میکرد و روی درخت کنار برکه هم جغد پیری به همراه همسر و دو جوجه جغد بانمکش آشیونه داشت. فرانزیسکا و جک به قو و ها قضا میدادند و با اونها خیلی مهربون رفتار می کردند. قو و جغت ها هم به اونها کمک می کردند و دوستان خوبی برای هم بودند. مثلا هر وقت فرانزیسکا میخواست به سفر دوری بره، گوی سیاه اون رو پشتش سوار میکرد و به هر جایی که میخواست خواست می برد. یا وقتی که موشها به انبار قلات فرانسیسکا میومدند، جقطها اونها رو میگرفتند و از بین میبردند اونها همینطور با خوشحالی و آرامش زندگی میکردند اما فرانسیسکا عقیده داشت که آقای قو خیلی تنها و غمگینه بنابراین یک روز جک رو به بازار شهر فرستاد تا یک قوی زیبای دیگه بخره و به برکه بیاره تا قوی سیاه هم با اون ازدواج کنه و دیگه تنها نباشه. جک برای رسیدن به شهر باید از جنگل بزرگ رد می شود. جنگل پر بود از حیوانات خطرناک اما جک از اونها نمی ترسید چون که خیلی شجاع بود. فرانزیسگا به جک چوب دستی بلندی داده بود تا بتونه در برابر خطرها از خودش محافظت کنه. جک وارد جنگل شد و به سمت شهر حرکت کرد اما از اون جایی که خیلی بازی گوش بود بین راه سرگرم بازی با پروانه ها و گل های توی جنگل شد و کم کم جاده ای رو که به سمت شهر میرفت رو گم کرد. وقتی که میخواست راه رو دوباره پیدا کنه، صدای کسی رو شنید که داشت جیغ میزد. اون به سرعت و با شجاعت خیلی زیاد به سمت صدا دویید. لابلای درخت‌ها دزدی رو دید که میخواست جواهرات یک دختر جوان رو بدزده جک شجاع با چوب دستیش یک ضربه محکم به دزد نابکار زد و اون رو, رو روی زمین انداخت. دزد بچه که شوکه شده بود و با ترس به جک نگاه می‌کرد جک آماده شد ضربه دیگه‌ام بهش بزنه ولی همین که چوب دستیشو بالا آورد دزد ترسو با عجله بلند شد و به سرعت فرار کرد جک دوان دوان پیش دختر جوان رفت و خیلی ترسیده بود و روی زمین افتاده بود دختر زیبا وقتی که دید خطر رفع شده اشکاش رو پاک کرد و بلند شد بعد با احترام تشکر کرد و به جک گفت که اسمش فرناندو و دختر یک طبیبه که توی قلعه سفید در همین نزدیکی زندگی می کنه. وقتی فهمید که جک راه رو گم کرده بهش گفت اون راه رو بلده و میتونه جک رو به سمت شهر راهنمایی کنه. اونها با هم راه افتادند و به نزدیکی شهر رسیدند. وقتی که میخواستن از هم خدافزی کنند، فرناندا از جک خواست که در اولین فرصت به اونها سر بزنه تا پدرش به خاطر نجات اون از دست دزد از جک تشکر کنه. جک هم که از دختر جوان خیلی خوشش اومده بود قبول کرد تا در آینده به قلی پدر فرناندا بره. اونها از هم جدا شدند و چک به سمت شهر به راه افتاد. وقتی به بازار رسید خیلی ترسیده بود و فقط یه دونه قوی سفید باقی مونده بود. قوی سفید خیلی بزرگ و بسیار زیبا و تمیز بود. اما اون هم مثل قوی سیاه تنها و غمگین بود. بنابراین جک به سرعت اون رو از فروشنده چاق سبیلو خرید و از شهر خارج شد. قوی سفید اولش میخواست با پرواز کردن از دست جک فرار کنه اما جک اون رو گرفت و با مهربانی اون رو بغل کرد و به خونه برد. فرانسیسکا از اینکه قوی سفید زیبا رو دید خیلی خوشحال شد. وقتی اون رو به برکی پایین تپه بردن هوا داشت تاریک میشد و ما هم کم کم داشت آسمون رو روشن می کرد. قوی سیاه هم در حال آبتنی کردن بود. اون وقتی که قوی سفید رو دید خیلی حیجان زده شد و از شادی نمیدونست چکار چه کار کنه. با خوشحالی بالهاش رو به هم زد و توی برکه بالا پایین میپرید. قوی سفیدم که میدید تنها نیست دیگه خیلی خوشحال شده بود و به داخل برکه رفتند و با قوی سیاه آشنا شدن با هم. جغد ها هم که از شادی بالهاشون رو به هم میزدند، برای اونها آواز میخوندند. قوها کلی توی برکشنا کردند و با هم حرف زدند روز بعد با هم ازدواج کردند و زندگیشون رو شروع کردند قوها دیگه تنها نبودند و در کنار هم خیلی شاد بودند اونها همینطور که با هم شنا میکردن به جک نگاه میکردند و با لبخند از جک تشکر میکردن جک با دیدن خوشحالی قوهها با خودش فکر کرد که خودش هم خیلی تنهاست بعد به یاد فرناندای زیبا افتاد که در جنگل ملاقات کرده بود و تصمیم گرفت برای دیدن اون دختر و خانوادش به قلعه سفید کنار دریاچه بره اما قبل از اون با مادرش مشورت کرد و ماجرایی رو که توی جنگل افتاده بود رو برای اون تعریف کرد. فرانسیسکا از شنیدن حرفای چک خیلی خوشحال شد و موافقت کرد که با هم به خونی پدر فرناندا برند. بعد از آره روز بعد که داشتن برای رفتن آماده می شدن ناگهان از برکه سر و صدای شنیدن وقتی به اونجا رفتن مار بزرگی رو دیدن که میخواست به به ها حمله کنه و اونها رو بخوره جک شجاع چوب دستیش رو برداشت و با سرعت به طرف مار دوید چوب دستیش رو بلند کرد و محکم به سر مار کوید، اما همزمان سوزش خیلی زیادی توی پای خودش حس کرد. مار گیت شد و افتاد توی برکه و غرق شد اما وقتی جک به خودش اومد فهمید که مار هم اونو نیش زده پای راست جک زخمی شده بود و داشت خون زیادی ازش می رفت. بعد بی حال به زمین افتاد و بیهور شد فرانزیسکا خیلی دستپاچه شده بود اونها از شهر دور بودند و نمیتونست این موقع شب داروی برای پسرش پیدا کنه همینطور که داشت گریه میکرد ناگهان به فکر دختر طبیب افتاد اما چطور باید خودشو رو به اون میرسون او حتی راه رو هم بلد نبود از جک شنیده بود که طبیب توی یه قلعه سفید زندگی میکنه با عجله پیش جغ رفت و ازش پرسید که آیا قلعه طبیب رو بلده؟ جغ پروبالش رو به هم زد و گفت قلعه سفید طبیب بد کمی فکر کرد و گفت بله بله طبیب دوست قدیمی منو توی قلعه سفید زندگی میکنه جغ باز هم به فکر رفت و گفت تا اونجا که یادم میاد قلعه توی جنگل و کنار دریاچه زیبایی فکر میکنم بتونم شما رو تا اونجا ببرم قوی سیاه هم به سرعت جلو اومد و بالهاش رو باز کرد. اون زندگی خودش و قوی سفید رو مدیون جک بود و میخواست اون رو نجات بده. بنابراین فرانسیسکا به همراه قوی سیاه و جغد پیر به سمت تبی پرواز کردند و قوی سفید هم توی برکمون تا تو از جک مراقبت کنه. نیمه های شب که با راهنمای جفت که شبها چشماش چشمش بهتر از همه می دید، قلعه طبیب رو پیدا کردند. فرانسیسکا با عجله در رو کوبید ولی کسی در رو باز نکرد. مثل اینکه طبیب خواب بود. باز هم در رو زد و بعد از چند لحظه طبیب پیری در رو باز کرد. گفت الان مریض قبول نمی کنم فردا بیاید. فرانسیسکا ماجره رو تعریف کرد و گفت که اسم پسرش جکه و اون الان زخمی شده و به کمک فوری نیاز داره. طبیب با شنیدن ماجره به سرعت در رو باز کرد. فرناندو هم با شنیدن اسم جک خودش رو به سرعت جلوی در رسوند و به پدرش گفت اون زن مادر همون پسریه که من رو از دست دوز نجات داد. پدر لطفا بهش کمک کن. طبیب هم به سرعت داروی پادزهر رو درست کرد و به فرانزیسگاه داد. اون هم بدون تلف کردن وقت دارو رو به پسرش رسوند و اون رو نجات داد. بعد از یک هفته جک کاملا خوب شد و مادرش همه اتفاقاتی رو که اون شب بعد از بیهوش شدنش افتاده بود برای جک تعریف کرد. جک با شنیدن ماجرا خدا رو شکر کرد. و از مادرش و جغد و قو تشکر کرد. بعد از چند روز به همراه مادرش به قلعه طبیب رفتند و از طبیب تشکر کردند. پس از اون جک و فرناندا که هم دیگر رو خیلی دوست داشتند با هم ازدواج کردند و کنار برکی زیبا به همراه فرانزیسکا، جغد پیر و قوها که حالا دیگه چهار تا بچه خوشگل داشتن بارامش زندگی کردند. به نظر شما، فرناندا چرا از جک خیلی هم خوش تیب نبود خوشش اومد و قبول کرد با اون ازدواج کنه؟ کانال تلگرامی هزار افسان، داستان های افسان ای صی نشانی کانال تلگرامی نقط می/ مهران دوستی،تی نقط m e h نشانی وبلاگ ما m e h r a n d o u s t نقطه مهران دوستی dotblackfall.com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی